مصنوی معنوی مولوی برنامه هشتاد و هفتم دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه های تلخ و ترش کوهی بروی شیرین شدن به داد آن مشایخ. آن یکی درویش گفتند در سمر خزریان را من بدیدم خواب در گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن و بال مرمرا سوی کوهستان راندند میوه ها زان بیشه افشاندند که خدا شیرین بکردان میورا در دهان تو به همتهای ما. هین بخور پاک و حلال و به حساب، به صدا و نقل و بالا و نشیب. پس مرا زان رزق نطق رو نمود، زوق گفت من خردها میر بود گفتم این فتنه است ای رب جهان بخشش ده از همه خلقان نهان شد سخن از من دل خوش یافتم چون انار از زوق میبش کافتم گفتم ار چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت هیچ نعمت آرزو ناید دگر زین نپردازم به حور و نیشکر مانده بود از کسب یک دو حبم دوخته در آستین نیت کردن او که این زر بدهم آن بدان حیزمکش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزمکش از زمیر و نیت او آن یکی درویش هیزم می کشید، خسته و مانده ز بیشه در رسید. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاص جسم را آمد بده است. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه چند است این بدهم بدو. بدهم این ذر را بدین تکلیف کش، تا دوسه روزک شود از قود خش. خود زمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شم هو. بود پیشش سر هر اندیشه ای چون چراغ در درون شیشه ای. هیچ پنهان می نشد از وی زمیر، بود بر مزمون دلها او امیر. پس همه منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب، که چونین اندیشی از بحر ملوک، کیف تلقر رزق انلم یرزقوک. من نمی کردم سخن را فهم لیک، بردلم می زد اتابش نیک نیک. سوی من آمد به حیبت همچو شیر، تنگه را ز خود بنهاد. زیر پرتوه حالی که او هیزم نهاد لرزه بر هر هفت عضو من فتاد گفت یا رب گر تو را خاسان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند لطف تو خواهم که میناگر شود این زمان این تنگ هیزم زر شود در زمان دیدم که زر شد هیزمش همچو آتش بر زمین میتافت خش من در آن بی خود شدم تا دیرگه چون که باخش آمدم من از وله بعد از آن گفت ای خدا گر آن کبار بس غیورند و گریزان زشتهار باز این را بند حیزم ساز زود بی توقف هم آن حالی که بود در زمان حیزم شد آن اغسان زر مست شد در کار او عقل و نظر بعد از آن برداشت هیزم را و رفت سوی شهر از پیش من او تیز و تفت خواستم تا در پی آن شهر روم پرسم از وی مشکلات و بشنوم بسته کردان حیبت او مرمرا پیش خاسان ره نباشد آمرا وار کسی را ره شود گو سرفشان کان بود از رحمت و از جذبشان. پس غنیمت دار آن توفیق را چون بیا بی صحبت صدیق را. نه چون ابله کیابد قرب شاه سهل و آسان در فتد آندم زرا ز قربانی دهندش بیشتر پس بگوید رانگاو است این مگر نیست این از رانگاو ای مفتری گاوت می نماید از خری بزل شاهانه است این بیرشوته بخشش مهزه استین از رحمتی. تحریز سلیمان علیه السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بحر ایمان همچونان که شاه سلیمان در نبرد جذب خیل و لشکر بلقیس کرد که بیایده ای عزیزان زود زود که برآمد آمد موجها از بحر جود سوی ساحل می فشاند بی خطر جوش موجش هر زمان صد گوهر از سلا گفته، مئی اهل رشاد، کین زمان رزبان در جنت گشاد. پس سلیمان گفت، ای پیکان روید، سوی بلقیس و بدین دین بگروید. پس بگویدش، بیا اینجا تمام، زود که الله یتعو به سلام، این بیا ای طالب دولت شتاب که فتو هست این زمان و فتح باب ای که تو طالب نی تو هم بیا تا طلب یابی از این یار وفا سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله و سره و ترک ملک خراسان ملک بر هم زن تو ادهموار زود تا بیابی بی او ملک خلود خفته بود آنشه شبانه بر سریر، حارسان بر بام اندردار و گیر. قصد شه از حارسان آن هم نبود که کند زان دفع دزدان و رونود. او همی دانست کان کو عادل است، فارغ است از واقعه آمندل است. عدل باشد پاسبان کامها نه بشب چوبک زنان بر بام ها لیک بود مقصودش از بانگ رباب همچو مشتاقان خیال آن خطاب ناله سرناو و تهدید دهل چیزک مانند بدان ناقور کل پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگریفتیم ما بانگ گردشهای چرخ هستین که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق مؤمنان گویند کاساور بهشت نغز گردانید هر آواز زشت ما همه اجزای آدم بودیم در بهشت آن لحنها بشنودیم گرچه بر ما ریخت آب و گل شکه، یادمان آمد از آنها چیزکی لیک چون آمیخت با خاک کرب کیدهند این زیر و این بم آن ترب آب چون آمیخت با بول و کمیز گشت زامیزش مزاجش تلخ تیز. چیزه که از آب هستش در جسد باول آتش آتشی را می کشد گر نجس شد آب این طبعش بماند که آتش غم را به طبع خود نشاند پس غذای عاشقان آمد سماع که درو باشد خیال اجتماع قوت گیرد خیالات زمیر بلکه صورت گردد از بانگ و سفیر آتش عشق از نواها گشت تیز آنچنان که آتش آن جوز ریز حکایت آن مرد تشنه که سر جوزبون جوز می ریخت در جوی آب تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چو سماه خوش بانگ آب اندر ترب می آورد. در نقولی بود آب آن تشنه بر درخت جوز جوزی می فشاند می فتاد از جوز بون جوزان در آب بانگ می آمد همی دید و هباب گفتش که بگذار ای فتا جوزها خود تشنگی تو را. بیشتر در آب می افتد سمر، آب در پستی است، از تو دور در. تا تو از بالا فرو آی بزور، آب جویش برده باشد تا دور گفت، قصدم زین فشاندن جوز نیست، تیز تر بنگر بر این ظاهر ما قصد من آن است کاید بانگ آب هم ببینم بر سر آب این حباب تشن را خود شاغل چه بود در جهان گرد پای حوزگشتن جاودان گرد جو و گرد آب و بانگ آب همچو حاجی تایف کعبه سباب همچنان مقصود منزین مصنوی ای زیا الحق حسام الدین توی مصنوی اندر فروع و در اصول جمله آن توست کردستی قبول در قبول آرند شاهان نیک و بد چون قبول آرند نبود بیش رد چون نحال کاشتی آبش بده چون گشادش دادایی بگشا گره قصدم از الفاظ او راز تو است قصدم از انشایش آواز تو است پیش من آوازت آواز خداست آشق از معشوق هاشا که جداست اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس لیک گفتم ناس من نس ناس نی ناس غیر جان جانش ناس نی ناس مردم باشد و کو مردمی تو سر مردم ندیدستی دمی ما رمیتا از ازرمیتا خانده لیک جسمی در تجزی مانده ملک جسمت را چوب بلقی سی غبی ترک کن بهر سلیمان نبی می کنم لا حال نه از گفت خیش بلکه از وسواس آن اندیشکیش کو خیالی می کند در گفت من در دل از وسواس و انکارات زن می کنم لا حول یعنی چاره نیست چون تو را در دل به زدم گفتنیست چون که گفت من گرفتت در گلو من خاموش کردم تو آن خود بگو آن یکی نایی که خوش نای می زده است ناگهان از مقعدش بادی بجاست نای را بر کن هادو که زمن گر تو بهتر می زنی بستان بزن ای مسلمان خود ادب ان در طلب نیست الا حمل از هرب عدب. هر به ادب هر که را بینی شکایت می کند که فلان کس راست تب و خوی بد این شکایتگر بدان که بدخو است که مران بدخوی را او بدگو است زان که آن بود که در خمول باشد از بدخو و بدتب آن حمول. لیک در شیخان گله زمر خداست، نه خشم و ممارات و هواست. آن شکایت نیست، هست اصلاح جان، چون شکایت کردن پیغامبران ناهمولی انبیا از امر دان ورنه هم مال است بد را حلمشان تاب را کشتند در حمل بدی ناهمولی گربود هستی زدی ای سلیمان در میان زاغ و باز حلم حق شو با همه مرغان بساز ای دوست بلقیس حلمت را زبون کهد قومی انهم لا یعلمون تهدید فرستادن سلیمان علیه السلام پیش بلقیس که اصرار مایندش بر شرک و تاخیر مکن. هین بیا بلقیس ورنه بد شود لشکرت خسمت شود مرتد شود پردهدار تو درت را برکند جان تو با تو به جان خسمی کند جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان باد را دیدی که با آدان چه کرد آب را دیدی که در طوفان چه کرد آن چه بر فرعون زد آن بهر کین وان با قارون نمود است این زمین وان چه آن بابیل با آن پیل کرد وان چه پشه کله نمرود خرد وان که سنگ انداخت داوود به است گشت ششصد پاره و لشکر شکست سنگ میبارید بر اعدای لود تا که در آب سیه خوردند غود گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران مصنوی چندان شود که چل شتر گر کشد آجز شود از بار پر دست بر کافر گواهی می دهد. لشکر حق می شود سر می نهد ای نموده ضد حق در فیل درس در میان لشکر اویی به ترس جز و جزوت لشکر او در وفاق مرتو را اکنون متیند از نفاق گر بگوید چشم را کورا فشار درد چشم از تو برارد صد دمار ور بدندان گوید او بن ما و بال پس ببینی تو زدندان گوشمال. باز کن تبرا را بخون باب العلل تا ببینی لشکر تن را عمل. چون که جان جان هر چیزی وی است دشمنی با جان جان آسان کیاست است. خود، رها کن لشکر دیو و پری که از میان جان کنندم سفدری ملک را بگذار بلقیس از نخست چون مرایابی یابی همه ملکان توست خود بدانی چون بر من آمدی که تو بی من نقش گرمابه بودی نقش اگر خود نقش سلطان یاغنی است، صورت است از جان خود بیچاش نیست. زینت او از برای دیگران باز کرده بیهده چشم و دهان. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تا به هر صورت که آیی بیستی که منم این وله آن تو نیستی یک زمان تنها بمانی تو ز خلق در غم و اندیشه تا به حلق این تو کی باشی که تو آن اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خدی مرغ خیشی سید خیشی دام خیش صدر خیشی فرش خیشی بام خیش جوهر آن باشد که قایم با خود است آن عرز باشد که فرع او شده است گر تو آدم زاده ای چون او نشین جمله زرریات را در خود ببین. چیستند اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیستند اندر خانه که اندر شهر نیست؟ این جهان خم است و دل چون جوی آب. این جهان حجر و دل شهر عجا.